بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله واصحابه اجمعین اما بعد حضرت يوسف عليه الصلاة والسلام وقتی که با درهای بسته مواجه شد و از هر طرف ناامید بود، چونکه که همه داستان به نفع زلیخا بود، قصر مال زلیخا، خدام مال زلیخا. و حضرت یوسف علیه صلات و سلام که بنوان یک غلام در قصر بود هیچ گونه حامی اونجا نداشت که از حضرت یوسف علیه صلات و سلام حمایت بشه تنها حامی ذات واری تعالی بود به طرف خداوند متعال متوجه شد و, و به طرف درهای بسته هم های بزرگ را برداشت خداوند متعال درهای بسته را به سوی حضرت یوسف گشودن و از دور گناههای بزرگ و عذابهایی که زلیخا دامی را بر حضرت یوسف گذاشته بود الله رب العالمین نجات دادن جلوه با عزیز میس ملاقات شد زلیخا همه گناه را برگردن یوسف علیه صلات و سلام انداخت اما خداوند متعال نبیش را در درهای بسته در جگه هیچ حامی نداشت عسمت او را حفظ کرد و از تمام این مشکلات حضرت یوسف علیه صلی اللہ را نجات داد به جهانیان این درس را داد که هرگاه خواست خداوند متعال باشه اگر تمام ظاهر امر برخلاف انسان باشه اما همیشه خواست الله رب العالمین بر تمام خواستهای دیگر غالب هست اینجا هم همون نمونه بارزی بود که الله رب العالمین به جهانیان این درس را دادند که همیشه ریسمان الهی را محکم بگیرید اگر ریسمان الهی محکم گرفته شود، در تمام مشکلات راه نجات وجود داره حضرت یوسف تنها به الله رب العالمین متوسط شد ناز از عزیز مصر کمکی خواست و نه از زلیخا مزرد خواهی کرد داستان سراسر مخالف و بر علیهش بود اما خاص الله رب العالمین که بر همه ها و غالب هست در حال بعد از اینکه از دست زلیخا حضرت یوسف علیه صلات و نجات یافتند و بیرون آمد داخل مصر داخل مصر حاله غوغا شد اونجا زلیخا پیشنهاد زندان رو داد اما عزیز مصر وقتی که فهمید که مقصر یوسف علیه صلات و سلام نیست روی حرف زلیخا اعتماد نکرد و هیچ تنبیه بر حدث یوسف علیه صلات و سلام در نظر نگرفت. داستان داخل شهر پیچید حالا هر که بامش بیش برفش بیش. اینجا خانم خانم عزیز مصر بود. عزیز مصر وقتی خداوند مطالب عزیز دیت میکنه یعنی کسی که حرف او در مصر در تمام مصر حرف او حرفی بود. وزیری به تمام مانا وزیر کل کشور بود. و شخصی بسیار دانشمند هم بودی. محبوبیت خاصی برخوردار بود. و جایگاه زلیخا جایگاه بود دیگران حسرت او را می خوردن سودی می کردن حالا وقتی از چرین جای چرین داستانی برخواست شهرتش هم به همین سوره این در سرتاسر مصر کوبیده شد شهر مصر پر شد از غوغاها سر صدا شد که همسر عزیز مصر رائیل یا زلیخا داره با غلام کنعانیش اینجا غلامم هست بعضا از کنعان از روستایی چه قدر او را از بین برده که خودش را دیوانی کرده وقال نسوه فی المدینه امرات العزیز تراود فتاه نفسه قد شغفها حبا انا لنراها فی ظلال مبین های در مصر گفتن که همسر عزیز مصر تراود فتاها علامشو برای خودش داره مرابده میکنه آماده میکنه برای فساد بعد شغفه حبه که محبتش در رگ و ریش قلبش رفته است اینا لنراها فی ضلال مبین ما میبینیم که این زلیخا خیلی گمراه است خیلی داره عمل میکند با اینکه که مصره انوز حضرت یوسف علیه السلام را ندیده بودند. یوسف مشاهده نکردن. فقط شنیدن. اما حسن یوسف زیبایی حضرت یوسف علیه السلام هم شهره آفاق بود. همه میشناختن. شنیده بودن خیلی زیبایی. وقتی که این چیزها شنیده شده بود اینها خواستند که یوسف را ببینند. خود خانومای میسر که یوسف را ببینند حالا ای اینجا که الله میفرماید و قال و قال نسوه فی المدینه که خانومای در شهر گفتن که این خانم دیوانه هست این خانوما کی بودن بعضی بین چهار تا خانوم بودن یکی همسری همون ساقی بود کسی که نوشیدنی‌های پادشاه رو آماده می‌کرد یکی خانو به آشپز بود یکی هم خانو دربان بود ایکی هم خانم زندانبان بود. اینها مسئولیتای بزرگی داشتند. همین خانم ها اول این حرفو شروع کردن تو اینها کسانی بودن که یوسف را دیده بودن داخل خود خونه رفت و آمد داشتن اینها گفتن که زلیخا دیوانه شده اومده عاشق غلام شده قبس شغف حبا که محبتش هم در در همون پرده قلبش رفته اینجا که میترمانتی قدر شغف آهوبا این شغف یعنی محبتی که به پرده قلب برسه یکی هست شعاف بدون نقطه شعاف و شغف نزدیکی همه شعاف یعنی دیوانگی شغف یعنی محبتی که به همون پرده قلب یعنی تا آخرین نقطه قلب نفوس کرده باشه این عشق و علاقه مرحلهی بیاد اول که شروع میشه با باید حواسه شروع میشه بعدها که روون فکر می کنید کمی میره امیغتر میشه, میشه تا اینکه انسانو به دیوانگی می رسونه ایک روایه تیه که حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنو می فرمنتی الشغف الحب القاتل شغف یعنی اون محبت کشنده محبت کشنده یعنی از همه چیز والاتره نگاه که یه نقطوکی بگم اللہ رسیدیم هم توزیعنا محمد اینجا دیگه دست اول بیگیم. اینکه بعضی میگن که بکار بردن کلمه عشق برای الله و رسول الله درست نیست چون از عشق حواس میآید. حالا انجام خوب را بکار بودن را بول آلمی که خوب یعنی اون محبت قاتل بکار بردن پس این جور نیست کلمه عشق در خود لغت تنها برای حواس نیست یعنی محبت مفرد محبت خیلی زیاد و این عشق. نه تنها با خاطر فساد کار نبیره هر جاییک محبت در محبت افراد سوره بگیره، عشق بکار میکنه. و اکثر در خود فرهنگ فارسی این عشق را بخاطر خاطر محبت مفرد بکار میبره. نه تنها با خاطر حواس. پس اگر کسی هم بکار بود، این جدی گناهکار نشده و نمیشه فوراً حق صادر کنن که این آقا گناهکار شده. کلم عشق انجوی است و خیلی می تحلیل بیکنه، اما تحلیلها چندان وزنی ندارن۔ اینجا هم زلیخا قدر شغف و حبا محبتش اینجا محبت یعنی محبت میگن که محبت کشنده گرفته بود این قدر محبت زیادی بود که فراغش قاتل بود به خاطر این زلیخا دیگه دیوانه شده بود و این قدر شغف و حبا رسیده به پرده قلبش روی قلب انسانها یک پردوپی هست که در اصطلاح به فعاد هم تعبیر میشه قلب میاد فعاد بیاد در احادیث فعاد هم یاد در قرآن هم فعاد بکابرده میشه این فعاد همون پرده هست رو قلبه اگر این پرده غلیز بیشه کلوخ بیشه رشد بکنه دلها سخت میشن خوف خدا در قبل جا نمیگیره تاثیر بر قلب سنگین میشه اما اگر این به اسطلاح پرده سبق باشه نازک باشه دلها نرم میشن تاثیر پذیر میشن زود نصیحت پذیر میشن در حدیثی داریم که نبی مکرم اسلام صلی الله عليه و سلم فرمودن که هم ہم و افیدہ اراق و افیدہ داخل صحیح بخاری در کتاب المغازی عام الغفود وقتی که یمنی ها پیش نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم که کہ ال يمان ایمان یمان والحکمہ یمانیہ ایمان یمنی است حکمت هم یمانی ها اینها اهل ایمان و صفات ایمان اینها خیلی قبیه آدم ها خوبی هستند باید فرمودند که ارق و هم قلب‌های و افعیده به کار بردند دل‌های نازوی دارند این پرده قلب این ها نازو تأثیر پذیر بعد اینسان ها این پرده قلبش رو این قلب سخت میشه اصلا تأثیر پذیر نیستند حرف حق را نمیتونه قبول کنند خیلی سختن اصلا متأثیر نمیشن اما اینجا الله رب العالمین دیگه برای زلیخا به خواب بود قشقف و حبا که محبت این قدر نفوز کرده بود تا همون تارگش رفتی بود تا آخر نقطه در قلب زلیخا این تأثیر کرده بود خانوم های مصر وقتی که شنیدن که زلیخا دیوانه هست و این عاشق یوسف هست علیه صلات و سلام اینهای حیله بکار بردن به بکار بردن حالا اینها مشتاق دیدار شدن. چگونه یوسف را ما ببینیم حالا یوسف مال زلیخه هست در قصر زلیخه هست هر جا هم نمیتونه بره. چون قبلها هم گفته بود که او نتخیز ولده قبل هم گفتم که ما او را بروان و فرزند خود ما میگیریم حالا که هر کسی هم دسترسی نداشت که اون دیدار یوسف نصیبش میشه اینها اجاز همون افراد بودن مثل علا پر شد. اما اینا حیله کردن. حیله کردن که چگونه یوسف را بیرون بیاوریم. تا یوسف را ببینیم. شروع کردن پشت سر زلیخا حرف درست کردن. با همین شستان صحبت می کردن. او این امرات العزیز و فتا نفسه قدر شغفا خوبا. محبت این قدر زیاده این نقاق دیوانه شده داره با یک گلام را آماده میکنه برای فساد. اینجوری گفتن تا که تحریک میشه زلیخا برای ظاهر کردن اون گنجی داخل خونهش نهفته بود باز هم نسبت دادن این گمراه این سرکشه این بیعقل نگاه بکن حرف های تحریک آمیزی گفتن خود همین حرف ها بیشتر برای حضرت نیسوخن سنگین چون هیل ها بیشتر میشد زولیخ متوجه شد که این خانم دارن هیله میکنن. وذارت تهمت میزنند و غیبت میکنند حالا کل قصر حرفوها شکستیان از این زلیخا دیوانه شده امروز رخا رو گردن فلام ما استمی از مکرهننا ارسلت الیهننا وقتی که زلیخا شنید این هیلارا ارسلت الیهننا فرستاد که اینها را بگید بی ایا و آمادی کبره اونها متکاء یک جای نشستن آماده که و کل واحد من هن سکینا و دست هر کدازونها چاغوی داد و قال تخرج علیهن یوسف بیرون فلما رأینه اکبرنه وقلنا قلنا حاشا لله وقتی یوسف را دیدن اکبرنه تازین کردن بزرگی را بیغان کردن و قلنا حاشا لله اینکه انسان نی ما هازه بشرا این هازه الا ملک کریم اینکه انسان نیست این فرشته است زولیقا وقتی که شنید حرف و حالا اللہ میگی این خود آیات الهی الله میگی فلما سمع مکرحن ارسلت الیهن وقتی شنید این لها و این فتنها دارن درست میشن حالا قاصل فرستای نها رو بگید بی چند نفر بودن؟ چهیل نفر از همون بزرگان خانمهای بزرگ مصر که خانم وزرا بودن از اشراف بودن از خانوادهای بزرگ بودن چهیل نفر از اونها رو آورد و یک نشستگاه بزرگی رو درست کرد، تالاری رو درست کرد و خوب او رو آرائش کرد زینت داد فرشه رو انداخت و یک جای خوب برای اونها تهیه کرد وقتی که تهیه کرد بعضی از در بعض روایت میاد و به اونها غذا داد غذا خوردن پذیرایی کردند. وقتی خوب زیرای کردن این متقا اینجا اومده متقا چندی معنا داره بالش این طرف اون طرف گذاشتا خانوما راحت با ویسه خیال راحت بتوند تکیه بده. بعضی به متقا یعنی حتی بعضی گفته معنی بدی بکار بردین حتی به شارمگاه خانوما رفتین آن بعضی میگن متقا نارنگی نارنگی هم در خود میوه نارنگی گذاشت اینها رو گذاشت و بعد از اونها چاغوها رو هم دستونها داد. غذاها رو خوردن. وقتی غذا خورده شد. بعد غذا تناول کردن. بعد از غذا که خوردن. حالا بشقاب ها تقسیم شدند، نرینگی ها آوردن. و بعد از اون چاغوها رو دستونها داد. چاغوها رو گرفتن. و به کنیزه گفته بود که هرگاه که من گفتم ایل راست بزن ایل یعنی رب اینجا نگفت یوسف را گو ہرگا گفتن ایل و صدا بزن او رو بگو بیا بعض روایت که زلیخا حضرت یوسف را در تالار آورده بود پشت پرده بود اینجا بیست تا من نگفتن بیرون نمیای و در بعضی روایت می اصلا بی یوسف اطلاع داده بود تو ناگهانی بیاد حضرت یوسف علیه الصلاۃ و السلام مشغول گیلکاری بود تو گیلا مشغول بود دستها والا کسی و فحر والا کسی بود والا خبر هم از داستان نداش اینجا چه خبری اینجا این دعوتی بود، این دعوتی و مهمانی بود اینجا بعد از اینکه اینها انها چاغوها رو گرفتن تو دستها چاغوها رو گرفتن بعد گفتن که مشتاق دیدار یوسف هستین شما یا نه گفتن بله میخوایم که ببینیم یوسف رو چون بخاطرین اینها، اینها حیله کردند تا یوسف را ببینن و یوسف هم که اصل از اینها با خبر نبود علیه صلات و السلام وقتی که اینها اظهار تمایل کردن زولیخا بکنیزش گفت که ایلو بگو بیاد در بعضی روایت میاد خود زولیخا به حضرت یوسف قالت خرج علیهن یوسف به اومد بیرون چکار که از فقط عبور کن فلما رأینه اکبرنه وقتی یوسف را دیدن اینها تعظیم کردن و قد تعن دستها رو غرید و قلنا حاشا لله گفت سبحان الله اینکه که ای آدم نیست این ها ما ها الا ملک کریم این فرشته هست این فرشته هست ای آدم نیست حالا وقتی که انسو گفت به بیرون طبق بعضی از روایات فرمودند که حالا برو بیرون رفت بیرون گفت برو تا آخر دوباره بر بگرد تا خوب از عقب جلو یوسف را ببینند و یوسف اینقدر قدر در کوچه میر بیرون بر راغی صورتش به دیوارها می افتاد. در این حدیثی داریم که نبی مکرم اسلام فرمودند که یک سوم زیبایی کل جهانیان به حضرت یوسف داده شده. در شبیک نبی مکرم اسلام به معراج تشریف بردن و گذر نبی مکرم اسلام از حضرت یوسف شد و فرمودند که یک سیوم زیبایی آلم به حضرت یوسف دو سیوم بر کل جهان تقسیم شده و در وید روایتون یاد یک سوم زیبایی کل عالم به یوسف و مادرش داده شده بوده یا به مادر بزرگ ساره داده شده بوده حالا انشاءالله اگر تمام کردیم سور یوسف را بعد می رسیم به حسن رسول الله صلی علیه و وسلم که یه مقایستی اونجا میکنیم کنیم چقدر زیبا بود اون محبوب کبریا. نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و هر حال همین هنگامی که حضرت یوسف علیه السلام علی یوسف چرا اومد چون حضرت اینجا تراخاندن یوسف دو حکمت داشت یک حکمت برای تبرئه کردن خود حضرت یوسف بود و حکمت دیگر اون تبرئه کردن زلیخا بود اما الله رب العالمین بزرگی یوسف را این بونها نشان داد چاووها در دست بودن به وقت که مشکول بریدن پرتغال ها و نارنگی ها شدن قالت اخرج علیهنه برو بیرون بیرون که دست ها رو بریدن حتی بعضی میک دست ها قط شدن وقت تعنه ایدیهنه و در طبق بعضی گفته مفسرین دست ها تا استخانه ها بریده شد یعنی این گوش کلن بریده برید شد تا به استخان چون دوبار غرفت و اومد بعد احساس کردن دستهای ما قاتل شده اند و در بعضی نوایت میاد که حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه و اکبرنه رو تفسیر کردن عبدالله ابن عباس امام المفسرین هست تفسیر کردن و اکبرنه به معنی که خانمها حضرت یوسف را دیدن همه خانوم ها معذور شدند. یعنی خانوم هیز اونها آمد. این محبت و این عشق این قدر او تاثیر گذاشت وقتی که چرا فرمون اکبر نهو به هیز تعبیر کردن؟ به این که وقتی که دکتری به سند بلوغ برسه هیزش می آیاده. اینجا حضرت عبدالعو نباز به هیز تعبیر کردن. دو وقتی که از فرق خوشحالی انسان که وحش زده باشه، همه چیز از دست میده و خیلی ها رق می و خیلی ها که بسیلا ادرار می کنن وقتی که اصلا بدنشو بی اختیار بشه اینجا فرمودن تین کلی خانوم های کنجا نشسته بودن یعنی رسواه شدن همه اونها حید همه اونها اومد با دیدن خسن یوسف علیه صلاة و صلاة حالا چجوری این محبت, تجوری این محبت اونجا رفت که دستها رو قد کردم هرگاه انسان نسبت به یک چیزی کامل تمام وجودش اگر به یک نقطه متمرکز بشه هر آدمی کلا با تمام حواس خودش به یک نقطه متمرکز بشه روحش از وجودش فاصله میگیره وقتی روح از وجود فاصله گرفت اینجا درده ها احساس نمیسن الله به طور تا بهترش وا بفهمید گاهی نشستید؟ یک مشکلی ذهن شما رو مشغول میکنه، یک مسئله ذهن مشغول میکنه، کسی یا صحبت میکنه، هرچی هم بیگ متوجه نمیشه هرچی بیگه متوجه نمیشی، حتی میزدنه متوجه نمیشی، می نمی چرا متوجه نمیشه؟ چون که شما حالا اینجا نیستید روح شما اینجا نیست. یا گاهی گا اگر خوب توجه رو کنی، گرمای خیلی شدید، برای خیلی تاثیر نداره. اصلا بچه کوچک، در چهل تابستان در آفتاب بازی میکنن، اصلا پروایی نمیکنن. همین ما این مشاهده میکنیم یا در هوای بسیار سرد یخ بندان با چادرام بیرون زیاد وقتی مشغول بازی هستن زیاد برای اونها گذار نیست چرا تاثیر مگر گرم نیست گرم هست اما با وقتی بازی به کل حواس در بازیش میره یعنی یک فاصله بین روح و قرار میگیره اینجا هم این محبت زیاد وقتی حضرت نصف را دیدن اینا کله از خود بی خود شدن محبت اینقدر و تمرکز حواس اینقدر از اینها پریده بود که دردها رو احساس نمیکردن کردن این از که اگر انسان تمام حواس خودش را اگر حواس پنجگانه با خیاله و نیات و روح هماهنگ باشند بر انجام کاری کاره بسیار سخت می انجام بده حالا می که حالا این ناسیابه تو دزک بودن خیلی بزرگ حالا داخل موزه هستن می گفت اینه مال جنات مال جنات نبودن مال انسانها بودن یا به تخت جمشید نگاه بکنی یا جاهای دیگه نگاه کنید یا الک شورای پیشرفته جهان چرا محصولات ش... محصولات اونها خیلی مرغوب و از ما خیلی قویابی چون ها وقتی کار می کنن با تمام اراده قوی میخوان کارو انجام بدن پس اونهایی که داره اراده قوی باشن و روح و روان اونها با اراده اونها هماهنگ باشه کار بسیار سختو میتونن انجام بدهن و احساس درد هم نمیکنن صحابه کرام وقت در محبت نبی کریم قدر زیاد بود حضرت ابو قطعا در جنگی بعد چشمش بیرون اومد و درد و احساس نکرد چشم از دست داد یا گو تلها رضی اللہ تعالی در گرفتن تیرها از دفاع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درست فلج شد اما دردها رو احساس نمی کرد چون هدفی بزرگتر داشت اون هدفی این هدف دردها کوچک رو از بین می برد. به هر حال حالا حضرت یوسف علیه السلام بیرون اومدن و وقتی که بیرون آمد و این خانمها ها این چیزو دیدن اکبر نهو تفسیر بعدی اکبر نهو یوسف علیه السلام با پا گذاشتن در تالار زلیخا با چهیل خانم که همه اونها دنبال این بودن که یوسف را دوباره به طرف خودشان مایل بکنن حضرت یوسف با وقار پیغمبرانه از اونجا عبور کرد با اون زیبایی و اون وقار بسیار بالا و سیما نبوت که همه خانم ها اونجا یک گفتن حاشا الله لله این انسان نیست این انسان نیست که با این همه زیبایی با این همه جوانی اما چقدر با وقار و چقدر با سنگینی ما به ما توجهی میکرد و همه گفتن که این یوسف پاک و یوسف با کاری نکرده اینجا از یوسف علیه صلات و سلام عبوری وقتی کردن اون عظمت نبوت وقار پیغمبرانه را روشن کرد و این با زیبایی در کنار خودش اما این وقارش اونها رو مرعوب کرد که این انسان معمولی نیست اینها ها ما حاضباش این ها این کریم این یک فرشته آسمانی هست چرا اینجوری گفتن؟ چون به خاطرین گفتن که همیشه خوبها به پاکان نسبت دادی میشه این دو د این حاضر الله ملکون کریم معنی اول که این یوسف که تو فرشتا خیلی نورانی خیلی زیبا هستن گفتن که یوسف نور آسمانی فرشته هست این انسانی تو انسان ها چنین نوری و چنین زیبایی قرار نداره وقتی الله رب العالمین آدم را خلق کردن آدم را تو الله به قودت خودش خلق کرد وقتی خیلی کرد در آدم حصل و زیبایی صد در صد کامل وجود داشت از همون حسن آدم یک سوم به حضرت یوسف داده شده و الباقی حسن آدم را بگه بچه ها و فرزندان و زرری آدم به اشت بردن حالش ما در دنیا می بینید که افراد را زیبان حیران می مانید یوسف که یک سرس دنیا را داشت اینها گفتم اینها دا الا ملکون کریم ایک معنا این بود معنی دقو این بود که در وجود یوسف اون ملکه فرشته قالب هست. یعنی یوسف با این جوانی، با این قدرت، با این زیبایی که به هر, هر طرف هم بی همه به گاهی، به اندازه دلها رو آب میکنه. و زلیخا یوسف هاونجا فراقاندی بود که به به عجب چشمه زیبای داری. فرمودن که این چشما در قبر میترکن. عجب اندام زیبایی داری. که نهار و خاق از دین میبره. اینجوری خواست من سرفش بکن همین چیز رو خانوما گفتن که یوسف با این زیبایی به هرکس کس بی که اونها دیوانه می شودن. گفت در این یوسف فقط اون فرشته غالب است این فرشته همیشه فرشته ها رو و انسان خوب را به فرشته ها نسبت میدم. تا امروز هم در این فرهنگ ما در ادبیات ما هم همیشه خوبان را به فرشته نسبت می تشبیه فرشته ها از اون زمان هم تشبیه فرش و بعد هار همیشه به شیطان میده شیطانی نکن الا به شیطان نسبت میدم کلوها که ان رؤوس شیاطین این الله هم دستود صافات میگه اینها مانند سرها شیطانن همیشه بعد را به شیطان زیبایی رو به حضرت به نسبت میدم بعد از اینکه دست ها رو قطع کردن بعد زلیخا به همونها ها گفت گفت قال فذلكن الذي بمطنني فيه این اون چیز شما بود منو ملامت می کردید؟ همیشه می گفتید زلیخا این کار رو زلیخا دنبال یک غلام کنانی افتاده نیفی این همون کار شما با یک دیدار دستها رو کردی حالا حالا دردبن مقایسه بکنید شما زلیخا گفت حالا شما یک دیدار مصفراتی دیدی فا یک بار رو شما و دستهاش مقاط و از مازمین رفتن تبقیه اون تفسیر که هیچ ما و رسوا شدید پس اون درد منو خوب احساس کنید بعد زلیخا بیخواسته ادامه داده انا راوتتهو عن ان نفسه فستعسمه من این یوسف را مرابده کردم تا برای فساد آمادش کردم فستعسمه اما یوسف پاکمان یوسف هیچ علاقه و ارادی به من نداشت. بعد فرمودند که ولا ل... این ان ما امره و يسجنن لی... من الصابرين اگر یوسف اون کاری که من میگه انجام بده یا به زندان انداخته میشه یا این است که رسوایش میکنن سبک میتونن یوسف را این اینجا ده زلیخا این کلامش را ناخواسته میرونه که نه تونست کنترل بکنه اونها از بین رفتن و اینها کلا از مرعوب یوسف شدن همه عاشق یوسف شدن اینجا زلیخا این کلامشو گفت که حالا شما من ملامت لکنید اما من این کارو کردم خواستم که با من این کارو انجام بده اما یوسف پاک کن اگر باز، اگر انجام رو حالا نمیگذارم. یا به زندان می اندازم یا او را صوق میکنم. اینجا زلیخ بعضی از معاصرین از مفسرین معاصر که قالبه انشاءالله اول کلام آزاد همین تفسیر رو کرده باشه فرمودن که خود. خانوم های چه نفری که آمده بودن همه اونها هم خواستن که یوسف را عاشق خودشان بکنن زولیخه با تمام آرایش آمده بود خانوم با تمام زینتها آمده بودن اینها خواستن که یوسف را به طرف خودشان مایل بکنن بعض زولیخه این چیز را گفت شما هم دارید که من ملامت میکنی حال خودتان را نگاه بکنیم حالا شما چکار کردی با خودتان حالا این کلام رای جروع حضرت یوسف گفت. کیا جو حضرت یوسف نگو چون حضرت یوسف کہ اونجا دیگه داخل قصر بعضی میگن که یوسف علیه السلام همونجا ایستادی بود که زلیخا به اونها ملامتی کرد و اونها نکوهش کرد و بعد اونها گفت حالا اگر این کارو نکنه من را نمیذارم و این کہ بعضی از علما میگوین که خود این خانومات کار کردن همین خانومات به تفسیر بعری خانومات به حضرت یوسف گفتن که یوسف چیزی که از تو خواسته انجامش بده چون اگر انجام را دادی این ورپورتو نمیشه تو رو از میکنه یعنی گویا که کل خانم ها همسدا و هماهنگ با زلیخا یوسف را به طرف دعوت زلیخا ترغیب میدادن این را انجام میده این سنگین شد جواب یکی بود حالا 40 نفر اضافه شدن حالا ترغیب و تشویق اما غیر از این یک چیز دیگرم هست اگر انسان یک کاری انجام داد کار انجام کار خوب باش، یابد باشه. اگر به تنهایی انجام میشه بده، اولی کی می نگران میشه؟ هر آدمی. وقتی کار انجام بده اول نگران میشه. آمریکایی کس دیگرو که کارت خیلی خوب بود. کار خیلی عالی کردی، نگرانی برداشت میشه، تقدیر میشه. اگر گناهی انجام بده و در گناه هم چند نفر اورا هم همکاری هم کنن و به کارت خوب بوده، چیز زیاد نکردین، اون سنگین از قلبش برداشت میشه. یعنی خود دعوت دادر خانمها که تو این کارو انجام بده اون قبول بکنه. یعنی گویا که تا حدودی خواستن که دوباره تغویت کرن زلیخا را و تضعیف میکنن برن یوسف را برای انجام کار اینجا خیلی سنگین شد خیلی سنگین شد بر حضرت یوسف چون تمام نیروها برای علی یوسف علی صلات و علیه صلاة و صلاة داشتن صرف میشدن و تفسیر بعدی این بودی ای خانوما او رو بطرف خودشان دعوت دادم و حالا که بکن علی جوانی علی این طرف یا اون طرف حالا این کارو انجام بده یا خودشان یه زلیخا حالا این تفسیر میگه این هست که چون جلوتر از این صبح جلوتر میگه که عبار الله عزی کاری خانوما داربون دعوت میدن نجات بده و جلوتر که از دواره زندان میاد بیرون دواره بادشاه میگه که ما با قطعنا ایدی اون خانوم های دستار رو قد کردن حالون ها شگونه بود از اون ها حالی بگیر شو ها یعنی همه اینها خواست ها من به طرف گناه و وابدارن گناه دعوت بده اما من قبول نکردم اینجا هم این خانواه بودن بعد از, از اون که اینها ملامت شدن زلیخه حرف خود زد که من این کار انجام میدم و اینو به طرف زندان می‌کشونم یا سبوخ می‌کنم این سبوخ ترا بو اس دساغری میشه علما میفرما هر جا که برای هر انسان یک چیزی درد آوره برای بعض از انسانها آبروشون خیلی مهمه یعنی بدترین عذاب و بدترین شکنجه آبروریزیه برای خیلی آدمها آبروریزی خیلی شکنجه سنگینی هست اینجا او رو تحدید کر به سبوکی و آبروریزی تا سبوخ میشه تا اون که این شکنجه شدیدی را بر حضرت یوسف علیه صلات و السلام تحمیل بکنه چون خود عبروزی یک شکنجه هست یک امتحان بزرگ هست الله رب العالمی هم خیلی از بزرگان را در اینها امتحان کردیان در اطلاعات و نصیبتها گرفتار شدیان به هر حال وقتی که حضرت یوسف علیه صلات و السلام این چیزو دید قَالَ رَبِّ السَّجْنُ وَحَبُّ اِلَّيَّا مِمَّا يَ بار اله اون زندان برای من محبوب است مما یدعونه الیه از اون چیزی که نداره من دعوت میدهان ایلا تصرف انی که اگه هنه اشدو الیهن و بار اله اگر شما ایلہ نهار از من بر نداری اسب اشدو من بطرف انها مائل میشن و اکم لرجاهلین و کار جاهلانی انجام میدم. حضرت یوسف علیه صلی و دید که هیچ راهی نیست حالا فشارها سنگین تر اول یک زلیخا بود حالا چهر زلیخا دیگر پیدا شد مشکل و مصیبت فشارها سنگین تر شد برای یک جوانی مجرد فشار است که جوانها النبی دیرونها خیلی شدید تره اما الله رب العالمین جا اسمت را بیان می که یوسف چقدر پاقدامن بود چقدر پاقدامن بود اول اونجا زلیخا اعتراک پس سمه اینجا دوباره پاک دامنی یوسفؑ سے دوار دعا میکرے الله اللہا تصرف عنی شیئ دونه اگر این کارو نہ نکردی یعنی من بینها انہا علاقی نہ هیچ ارادی ندارم, ارابی ندارم. ای خدا از این گناہ بزرگ منو نجات بده و از این امتحان بزرگ منو بیرون بکنم حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام این دعا رو کرداں سوال انجامت رہے ہمیشہ حضرت یوسف ترا زندان و ترجیح داده چون کہ زلیخا فقط دو راہ بود یک را یا زندان میکنم یا رسوا میکنن از این دو راه چاری دیگر نیست از اون بی زندان بهتر بود حضرت دو مسیبت و یک این بود که این مصیبت ها را اونها در مقابل گناه قرار دادن یا گناه میتونی یا این بلاها رو سرت می آوریم حضرت یوسف علیه صلات و برای نجات از گناه این چیزو اختیار کرد که نه ما میرن زندان اما گناه انجام نمیدم و انجا دهتی در بایز روایت میاد که حضرت یوسف اگر از الله رب العالمین طلب میکه ای خدایا از این مصیبت ها نجات بده الله رب العالمین همون چیز بهش میداده مانند حضرت سلیمان علیه السلام یه روزی به داخل صحیح بخاری حدیث هست یه روزی به تمام به صلاح قدم ها و ارتشش گفت بری جهاد کنی گفتن نمیری بعد گفت که نرید من که 99 تا همسر دارم دروازه رواسمیه 400 تا همسر داشت امشب با همه اونها مقاربت میکنه همه حمله میشن 90 تا 100 تا بچه چون دروات در بخاری بیا 100 تا خانوم داشت که 100 تا خانوم دارن 100 تا بچه مییاد 100 تا جوان درست میشه یک ارتش میشه اینها کسی که کنار ہی صادق بود آسفین برخیا دو حضرت بگو ان شاء الله فراموش کر نگو ان شاء الله بعد بچه بچه 4 از تد تا خانم فقط یه بچه چهار ماهه متولید شده دا حال قرآن الله اشاره میکنه که بر کرسی سلیمان انداخت اینو بگیر تو الان گفتی من ستا درست می کنم میران جهال نبی کری فرمو اگر انشاءالله میگفتن اللہ رب العالمین برایو تا فرزن انعایت میکرد اما انشاءالله نگو ایکی هم کامل نه آمد یه نصفی آمد که مورد متولید شده اینجا هم حضرت عیسی علیه الصلا السلام اگر اونو رو بعضی میگن که اگر اونو مطالبه میکرد خدا مراحتی بده همون راحتی داده می‌شد اما حضرت عیسی علیه السلام این رو اختیار کرد خب بعضی میگن که آله صحابی سوالی که الله من اسالک صبر بار الله من اسو صبر می می‌کنم نبی مکرم است که صبر طلب نکن این دعای خوبی نیست چرا چون صبر زمانی یک مصیبتی بیاد یعنی تو دار مصیبت طلب میکنی مصیبت طلب نہ کر راحت طلب اللہ تمہیں ربنا آتنا فی حسنا و فی الاخره حسنا و عذاب النار خوبی ها طلب کرتے نہیں صبر ہم طلب اللہ دعا که جهاد کو نبی کریم فرمودن دعا جہاد نہ کرو حدیث داری که لا این دعا نہ کرو روبرو اما اگر ذبرو قرار گرفتی و ثابت قدم باشی اینک جهاد پیش و معماری از کجا معلوم تو اونجا بشیری ثابت قدم باشی از کجا معلوم فرار نکنی و فرار از میدان جنگ مانند شرکی یعنی گناهی بزرگ یعنی تولی یا زهث قران می آید الله میگه که در جنگ فرار نکنید پس این دعا رو هم نباید می‌کنید والله تمام نلیق آل ادب تمام نمی‌کنید که ما با دشمن روبرو باشیم فیض لقیتو تو موفق بود اما اگر پیشو ما اتفاق افتاد آلاء تلاش خدا ما رو ثابت قدم اینجا هرگز نیه ای خدا من صبر بده صبر بده این نکن. دوار نکن دو آفیات ای خدا آفیات بده ای خدا ن برای من نیکیها حسنا تو بیار تنها صبر دعا کنید چون اگر صبر دعا کنی یعنی چی یعنی خدا او اون بر من بیه ثبتون صبر بکنن. این چیز خوبی یک صحابی دعا کرده بود باری اله هر مصیبتی قرار در آخرت من بدی در دنیا منو بگیر بیمار شد هر روز بدتر می شود لاغرتر می شود از می نبی مکرم اسلام ملاقات شرفتو از همسر پرسی حال کساره و داله هر روز بدتر میشه. شود کچه گفته این دعا رو کرده فرمه بوده این دعا رو که نمی کنن بیغ رب بناتنا فی الدنیا حسنا و فی الاخرت ای خود در دنیا هم خوبی بده در آخرت هم بده؟ مقال الله نمیتونه؟ الله که میتونه؟ اما اینجا این اشکالی که اینجا بر حضرت یوسف گرفته اند این اشکال کامل رد هست اشکال حضرت یوسف وارد نمیشه چون حضرت یوسف علیه السلام در یه موقعیتی بود که و فقط راه نداشت یا گناه یا زندان بود حضرت یوسف علیه السلام خود را از زندان زلیخا بیرون کرد و به آزادگی پروردگارش رساند. زندان گرچه بظاهر زندانی بود اما زندان در اصل اون رهائشی بود از قید دلیخا و مصریان بود از اونها رها رو بود به یک زندان روی که آزادانی میتونه سروردگارش را اونجا صدا بزنه پس از یک زندان فرار کرد زندان خواهشات نفسانی که ها و هی مصریان اون زندانی بظاهر در میلها بود اون زندان در اصل یک آزادی بود نبی مکرم اسلامی میفرمان که از دنیا چه جنل مومن؟ دنیا زننم برای مومن هست. که مومن در دنیا آزاز نیست. هرچو دلش بخواست نمیتونه انجام بده. حسن آبرین. اینجا هم حضرت یوسف علیه السلام این چیز از اللہ رب العالمین خواست که خدای اون چیزو برای من انایت بفرما. و بعد این است که حضرت یوسف علیه السلام اینجا خواست که به رب گشت حرم که و ایلا تصف عنی که دو هم اسب ایلی هن و اکثر جاهلی بارالها اگر تو از من بر نداشتی این ها رو حکومت نکردی من شجع ما ایلسن از این آی... از این قسمت آیه و از اولاما استدلال کرده اند که برای دوری از گناه تا زمانی الله توفی نده ما نمیتون خود را از گنا دور کنیم انسان خودش نمیتونه قدرت خودش نمیتونه بگه من و قدرت خودم میتونم از بونه برندیورم تا الله رب العالمین کمک نکنه، انسان هیچی نمیتونه بکنه چرا؟ که در انسان دو حالت وجود داره یکی انجام کار وقتی که یک انگیزه این نقطه نفسی رو گونه وقتی در وجود یک انسان یک انگیزه برای انجام کاری پیدا میشه یک ملکه در, در وجود انسان فعال میشه. یق قالب انسانو دستور میده این کار انجام بده این کار, ای کار انجام بده فشار میاد خودو علاقه مییاد اسباب آماده میشن و از جانب ترک هست حالا انجام گناه دو ترک گناه اینا دو, دو کارن. ترک گناه به انجام گناه حالا انجام این فعل وقتی دو تا با هم نقیز هم دیگه قرار بگیرن انسان نمیتونه در نقیزه این بیا بیرون انجام دادن یک انجام دهد اینا از دیگه هم دیگرن رفت یک انجام میده مگر این که بر قلبت غلبه کنید و چون که این حدود زیاد استان غلبه کردن بر این زیاد امکان پذیر نیست. مگر این که توفیق رب باشه. به خاطری سواله صلاه و صلا دعا کردن که اللّه تصرف علی که نه اسب لهن و عتمل جاهین. اگر این کارانه کردی یعنی برای الله من مایل میشم. پس این است که برای اینکه از گناه بریم بیرون هرگز فکر نکنید که ما قدرت داری ما نداریم. چون م... ما قویته بر انجام کاره مگر این الله رب العالمین در وجود ما اون انگیزه ملکی قوی را بی که ما رو غالب بکنه برای ترک انجام کار به خاطر این است که در حدیث داریم که نبی مکرم اسلام فرمودن اگر بنده ای برای انجام کاری گناهی اراده بکنه و بخواد گناه رو انجام بده اگر انجام نداد یک نیکی به او میرسه چون خود ترک یک عمل سنگینی نفس و غلبه میکنه پس این هم یه کار بزرگ خیلی ها فکر میکنن که من میتونم اکثر افرادی این میگن حالا هر کی خودشو نگاه بکنه اکثر گناه گناهان و اکثر وابستگی ها به غیر الله به خاطر که یا را مسخره کرده اید یا فکر میکنی من قوی هستم بعد میبینی گرفتار میشی یعنی وقتی کل چیز را به طرف خودتان معایل می کری بیگی من میتونم، من میتونم، حالا گرفتار مشکلات و مصیبت ها میشیم. شیم داریم که نبی مکرر اسلام فرمون صلی اللہ علیہ که هر جا انسان چیزی را طلب بکنه، الله رب العالی او را واقوزار خودش می اما اگر طلب نکرد، و بازدور به او داده شد الله رب العالی فرشت می تا او را کمک بکنیم پس انسان به تنهایی خودش نمیتونه کار انجام بده اینجا این درس حضرت یوسف بود پس هرگز ندید که من توانمندم من فوانا هستم من میتونم او بیچاره نگاه کنم او رو نگاه بکُن اون کارو کرده حدیث داره اینکه من اگر اخاذ زنب لن یمت حتا یفعل هو هر کسی مثل معانیدو ای بزن به گناهیت نممیری مگر اینکه در همون گناه مبتلا میشی بعضی می او فر کارو کرد در میزنی واچ بد بدن، اما آر نزن اگر این کارو کردی میگه الله رب العالمین او رو تو رو مبتلا میکنه به همین گناهی که او رو آرزو دیدی این هم درسی هست از اینکه هرگز خود را قوی ندونید تا قدرت الله رب العالمین نواسه توفیقات رب نواشه ما نمیتونید از هیچ گناهی بیرون بیایید و هیچ کاری رو انجام بدید مگر اینکه الله رب العالمین از ما اینها رو دور بکنه بعد اینجا اسل الیهنا و اقمن الجاهلین معنا این نبود که حضرت یوسف علیه السلام معصوم نبود بلکه عصمت داشت اسمت یوسف علیه السلام از نبوت قبلیش بود این که ای خدا یا اسبینهارو دور بکنه این علامت بندگیش بود این بندگی خود را جلو گذاشت انسانی که مال داره میگه من هیچچه‌ای ندارم هشدار ما الله رب العالمین این بندگی حضرت یوسف علیه السلام معصوم بود اما وقتی به الله این دعا رو کردان بندگی رو ظاهر کردن مانند حضرت موسی علیه السلام و سلام وقت داخل بنی اسرائیل گفتن که آلم تر من ظاهر کار آلم تر بود نبی بود از این آلم تر بود اما بندگی چیزو نمی خواست تغازه بندگی این بود که بگو الله این هم قاضی بنده گی همیناست که وید الله خدا تو منو بربداد من هیچچی نیستم من قدرتی ندارم ولو پیغمبر باشم اون اسمتی که دارم اون اسمت را الله گذاشته الله محفوظ کرده از خودش اینو به سلام تلف نکردی بوده از کمین من نیستم از جاهلین جاهل چه میگه یعنی کار جاهلانه انجام میدم این یه فرم دیگری هست هر گناهی که ما انجام میدیم این گناه کار جاهلانه است این کار گناه کار جوهاله. چرا؟ چون عقل، این دانش انسان میگه این کار بده. اگر با این که آگل و دانش میگه نکن، اگر ما انجام دادیم، پس کار جوحال رفته، کار مامن نرفتیم. یک معنا این داره میده. معنا بعدی این است که بار لاه، اگر این اسمتی دادی تو این تو هست و اگر تو من حفاظت نکنی، من معصوم قرار نمیگیرم. و این نبوتی مسئله سوال میشه. پس این اسمت پرورده کاره. اظهار بندگی کامل. بندگی کامل وقتی که بندگی کامل کرد و, کر و پروردگار ای وقتی کرد کر فلما بدع هم وقتی برای مصریحا ظاهر شد که آیاتو دیدن نچانی هم کردن لیستننو حت تاحین یوسف رو حالا تا مدد و در زندان می اندازی آخر به این نتیجه رسیدن کل مصریحا چرا؟ گفتم حالا اینجا دیگه مصریح غوغا بقامی شد انجای خانم ها انجام دلخواه و بعد به سوایت. حالا اگر یوسف مدت داخل زندان بره، اینها خاموش میشن و اتفاقات از بین برند و دیو سفر بیرون میکنیم. پس اینجا الله را علیمین. حالا این یوسف عليه السلام را در یک آزمایش بزرگ، از زندان بیرون، از چاه بیرون کرد. بعد گرفتار زندان زلخا شد، از زندان زلخا بیرون شد، گرفتار زندان, شو از زندان, زندان خانم های مسیوی شد، از این زندان بیرون شد، در زندان واقع دیگر گرفتار شد. این هم مراحل مراحل باید طی بکنی تا به کمالات برسی حدیث داریم هرگاه که داخل حدیث صحیحی دا داریم هر بنده دا ای بعضی بندگان یک جایگاه ویژه‌ای در نظر الله دارن یک جایگاهی دارن اما اعمالشون اونها رو به اون جایگاه نمیرسونه اون اعمال انجام نمیده الله رب العالی اون را در مشاقات میاندازه تا به همون جایگاهش برسه او مقام رب او عنایت میکنه پس این مصیبت ها که روی آدم هایی می آیند و تسلیم رضا بشه و به پروردگار هنگ تعظیم بکن وار الله من تسلیم رضا شما هستم یوسف علیه السلام تسلیم شده ای خدا تسلیم زندانم تسلیم اونها تسلیم از این ها بیرون پس این است که در مشکلات وقتی گیر کردید فقط به الله را العالمین برای حل اونها اقدام بکنیم غیر از اون هیچ جای گشایی برای هیچ کسی نیست الله توفیق و عنایت بفرماید